درخش تصادف ترلکوفسکی مثل حیوانی که به دام افتاده داخل اتاق بالا و پایین می رفت. گاهی به طرف پنجره می رفت و به بیرون نگاه می کر. زیر پایش گودال عمیقی بود که اطرافش را دیوارهای بلند با پنجره های متعدد احاطه کرده بودند اتاقش در طبقه ششون بود اما چون ساختمان های اطراف بلندتر از هتل بودند نور مستقیم کمی به آن می رسید در بقیه روز فقط برای توالت که در راهروی روی نیمه تاریک در طبقه پایین بود از اتاق خارج شد و خیلی زود به خواب رفت نیمه شب در حالی که بدنش از ترس سرد و خیز شده بود از خواب پرید توی خواب انوا و اقسام کابوس های هولناک و سراغش آمدند با چشم های باز روی تخت راست کشید و دست‌هایش را به امید یافتن اشیای ثابت و لمس پذیر به طرف سایه های اطرافش دراز کرد اما واقعیت هم به اندازه کابوس ها کننده بود تاریکی با جذب اشکال آشنای اساسی اتاق سر و شکلی غیر زمینی و نا به خود گرفته بود درون این خلع بدون تردید چیزی اهریمنی و ناشناخته داشت شکل می گره. اتاق به مکانی برای نشف و نمای حیولاها تبدیل شده بود. شاید در این لحظه نمیشد چیز خاصی را ردیابی و کشف کرد، اما خیلی طول نمی کشید. همچون یک لوله آزمایشگاه، ذهن سرشار ترلکوفسکی ترسهایش را درون فضای توهی اتاق میریخت و وقتی آنها از یک گیرنده به سراغ گیرنده دیگر میرفتند، شکل و حجم مادی به خود میگرفتند. هیوله هایی که از ذهن ترلکوفسکی تراوش کرده بودند، ارگانیزم جانداری بودند که آماده میشدند خودشان را با خوردن خالقشان سیر کنند. باید جلوی این افکار را میگرفت. ممکن بود برایش گران تمام شود. با رسیدن صبح به این نتیجه رسیده بود که به هر قیمتی باید برای خودش اسلحه تهیه کند. البته گفتنش آسان بود. اما از کجا میخواست اسلحه تهیه کند؟ آنقدر داستان پلیسی خوانده بود که بداند برای حمله اسلحه احتیاج به مجوز دارد به هر مغازه اسلحه فروشی که پا میگذاشت پیش از آنکه حتی فرصت تمام کردن جملهاش را پیدا کند، از او تقاضایی مجوز میکردند و وقتی میدیدند او مجوزی ندارد از فروش اسلحه به او خودداری میکردند حتی ممکن بود او را تحویل نزدیکترین پاسگاه پلیس بدهند یا به او را در مغازه دست به سر کنند تا پلیس از راه برسد و اگر پایش به پاسگاه پلیس رسید چه دلیلی می توانست برای تقاضای خود ارائه دهد اگر جزئیات توطعهای را که همسایه ها علیه او ترریزی کرده بودند فاش میکرد بدون شک فکر میکردند دیوانه است و شه بسا او را به یک تیمارستان میفرستادند عاقلانهترین کار این بود که از طریق کانالهای رسمی اقدام نکند از هتل خارج شد و زیر سایه دیوارها به قدم زدن پرداخت. به تمام پاتاخهای مشکوک و خلافی که در آن نزدیکی می شناخ سر زد. وارد هر کدام از این بارها که میشد تمام توانش را به کار می گرفت تا از متصدی بار بپرسد هفتیری برای فروش دارد یا نه. اما در نهایت جرأت کرد. به سرعت صورت حسابش را می پرداخت مثل یک دوست پنهانی از بار بیرون میزد و به کافی بغل دستی یا آن طرف خیابان می رفت. و همه چیز از نو شروع می میشد. نزدیکی های بعد از ظهر بود که دست از این کار کشید. برای اینکه ظاهرش تا حد ممکن شبیه آدمهایی شود که معمولا به این مکان ها رفت آمد دارند، وارد هر کدام از این بارها که شده بود، انواع و اقسام نوشیدنی های آلکالی را خورده بود و در نتیجه تا حدی مست کرده بود. به خصوص از آنجایی که در 24 ساعت گذشته چیزی نخورده بود، الکل مستقیما به مغزش رسیده بود. به عنوان آخرین چاره تصمیم گرفت یک هفتی را اسباب بازی بخرد شنیده بود بعضی اسباب بازی ها توانایی تخریب بسیاری دارند روزنامه ها هم همیشه پر بودن از چنین داستان هایی یاد یکی از همین داستانها افتاد که در آن پسر بچه‌ای در اثر بازی با یکی از همین اسباب بازی ها بینایش را از دست داده بود اگر چنین نتیجه ای به طور تصادفی امکان پذیر بود پس استفاده ی آن میتوانست توانست نتایج موثرتری داشته باشد. فروشنده زنی که در قسمت فروش کار می میکرد، طرز کار یک هفتیر کوشک را به او یاد داد. ترکوفسکی جعبه ی بازی را کنار گذاشت و هفتیر را داخل جیبش فرو کرد. فروشنده لبخند زنان و در حالی که مهربانانه سرش را تکان می داد، رفتن ترکوفسکی را تماشا کرد. اسلحه اعتماد به نفس او را به طور قابل ای بالا برد. دستش را محکم روی جیبش گذاشت، طوری که اسلحه حتی از روی لباس هم غالب دستش شد. دلش میخواست اسلحه را از جیبش درآورد و امتحان کند، اما این کار می‌تواند عواقب بدی داشته باشد. ممکن بود دیگران متوجه اسب با بازی بودنش نشوند. باید هرچه زودتر به هتل برمیگشت. صدای فریاد بلندی ناگهان او را به عالم واقعیت باز بازگرداند. به محض اینکه احساس خطر کرد، دستش را به طرف جیبش برد، اما فرصت پیدا نکرد هفتی را بیرون بیاورد. ضربهی حاصل از تصادف او را چند متر به عقب پرتاب کرد. حرارت حاصل از دیواره مشبک رادیاتور را روی بدنش احساس کرد، اما اتومبیل به موقع توقف کرده بود. اتومبیلی که با او تصادف کرده بود، یک اتومبیل آمریکایی بزرگ اما قدیمی بود. رنگش از جلو افتاده بود و در چند نقطه هم پوس پوس شده و ترک برداشته بود. یکی از چراغ‌های جلویش شکسته بود و یکی از گلگیرها هم به تازگی غور شده بود. ترخوسکی با خودش فکر کرد یکی باید در اثر برخورد با من پیش اومده باشه. فقط خدا کنه به خاطرش دردسر درست نشه. خواست بخندد اما تلاش برای خندیدن خیلی عصب آور بود جمعیت از هر طرف به سوی او حجوم آورد و همانطور که فشار میدادند و یکدیگر را عقب می راندند، دور او حلقه زدند هنوز کسی جرأت نکرده بود به ترلکوفسکی نزدیک شود اما مطمئنا این وضع خیلی طول نمی کشید. جمعیتی که دورش جمع شده بود بسیار مشتاق بود تا از میزان دقیق آسیب اطلاع یابد ترلکوفسکی خوشحال بود که قبلا پاهایش را شسته اینطوری وقتی او را به بیمارستان می‌بردند در برابر پرستارها خجالت نمی‌کشید. یک مرد راهش را از میان جمعیت به سوی او باز کرد و با صدای بلند گفت: من دکترم، بذارید ردشم. تر بیستید. مریض به هوای تازه احتیاج داره. در مدتی که دکتر با احتیاط او را معاینه می‌کرد، ترلکوفسکی دندانهایش را محکم به هم گره کرده بود. دکتر سعی کرد او را به حرف بیاورد و مرتب تکرار می‌کرد: درد دارید؟ منو میشنوید؟ کجاتون درد میکنه؟ میتونید حرف بزنید؟ چرا باید به خودش زحمت حرف زدن میداد؟ چه لصد بخش است که آدم مجبور نباشد به سوال دیگران جواب بدهد. علاوه بر این او کاملا به هم ریخته بود و توان کوچکترین حرکتی نداشت. خودش را به این راضی کرد که منتظر بماند و ببیند بچه پیش می دیگر حتی است کنچخاویش را هم از دست داده بود و نسبت به همه چیز بی شده بود. سرش به طرف اتومبیلی بود که با آن تصادف کرده بود. ناگهان ناله بلندی از ته گلو کشید. مردی را که هنوز بی حرکت فرمان نشسته بود. به جا آورد. راننده یکی از همسایه ها بود. یک نفر فریاد زد. بد جوری آسیب دیده. شنیدی چطوری ناله کرد؟ باید از اینجا ببریمش، نباید اینجا بمونه یه داروخونه اون طرف خیابون هست چند نفر دست و پای ترلکوفسکی را گرفتند تا او را به داروخانه ببرند دو پلیس هم به دکتر ملحق شدند و همراه او در ابتدای صف مشایعین این ترلکوفسکی را از خیابان رد کردند پیشخان داروخانه را با عجله از وسایلی که روی آن بود پاک کرده و ترلکوسکی را روی آن دراز کردند. دکتر باز هم تکرار کرد کجاتون درد می کنه؟ جواب نداد. تمام فکر و خیالش در بند راننده بود که با بقیه جمعیت وارد مغازه شده بود. راننده به طرف یکی از پلیس ها رفت و با صدای آرام سرگرم گفتگو با او شد. در این فاصله دکتر فرصت پیدا کرده بود موایینه دقیقتری از ترلکوفسکی به عمل آورد. بالاخره صاف ایستاد. ظاهراً آماده بود تا نتیجه معاینه را اعلام کند. خیلی شانس آوردید. نه استخوانی شکسته و نه حتی یک در رفتگی ساده مچ پا دیده میشه. فقط چند خراشیدگی مختصر که اونم ظرف چند روز برطرف میشه. همین حالا زده اوفونی و می کنم. اما به هر حال ضربه رویه شدیدی به شما وارد شده. بهتره چند روزی خونه استراحت کنید تا حالتون کاملا خوب شه. بعد هم با کمک دکتر داروکساز، زخمای ترلکوفسکی را با مرکوکروم ضد افونی کرد و روی آنها را با چسب پوشاند و گفت: "مسلما اگه چند تا عکس از بدنتون بگیرید بهتره. اما هیچ ای نیست. برای شما بهترین چیز اینه که تا حد ممکن استراحت کنید. آدرستون کجاست؟" ترلکوکسکی ترسیده بود. چه جوابی می بدهد؟ اما بعد مرد همسایه به جای او زحمت جواب دادن را کشید و گفت مستیو در همان ساختمونی زندگی میکنند که من ساکن هستم. حداقل کاری که در این شرایط میتونم براشون بکنم اینه که ایشون را به منزلشون برسونم. ترلکوکسکی خواست از جایش بلند شود و پا به فرار بگذرد. اما تعداد زیادی دست او را بلافاصله سر جایش برگرداندند. به تقلیه ادامه داد اما کاملا بیفایده بود. مولی تمسانه گفت نه، نه، من نمیخوام به اون خونه برگردم. همسایه لبخند موزیانه ایزد و گفت خواهش میکنم، من مسئول اتفاقی هستم که براتون افتاده. طبیعیه که بخوام جبران کنم. من شما را میبرم خونه و وقتی حالتون بهتر شد، میتونیم درباره آسیبی که بهتون وارد اومده صحبت کنیم. بعد به طرف همان پلیسی که چند لحظه قبل با او مشغول صحبت بود برگشت و گفت: شما که دیگه احتیاجی به من ندارید سرکار. اسم و آدرس محل زندگی منو یادداشت کردید؟ افسر پلیس با حرکت سر تایید کرد. شما میتونید برید موسیو. بعدا ازتون میخواهیم تا برای ادای توضیحات به پاسگاه بیایید. شما مسئولیت بردن ایشونو به خونه به عهده می گیرید؟ با کمانه میل، فقط کمک کنید تا ماشین حملش کنیم. تللکفسکی باز هم شروع که به دست و پا زدن و فریاد زد. نه، نذارید منو با خودش ببره شما حتی اسم آدرس منو نپرسیدید. پلیس گفت. چرا اسمتونو در دفتر ثبت کردیم؟ و لطف کردند و همه چیزا در اختیار ما گذاشتند. او یه قاتله، میخواد منو بکشه. یک نفر با هم در دی زمزمه کرد. این به خاطر شاک روحیه دکتر گفت به خواب داره من یک آمپول بهش میزنم ترلکوفسکی فریاد زد نه آمپول نزنید اونا میخوا منو بکشن باید جلوشونو بگیرین باید به من کمک کنید ترلکوفسکی به گریه افتد صداش رنگ و بوی ناله و تذر روی التماس میداد می خواهش میکنه به من کمک کنید هر خواستید ما رو ببرید اما نذارید اون ما رو به هر زحمتی بود به او آمپول زدند. ترلکفتی احساس کرد چند مرد او را بلند کرده و به سرعت به طرف ماشین میبرند. به خاطر آنپول خوابالود بود. میخواست اعتراض کند اما بهتر دید نیرویش را برای بیدار ماندن حفظ کند. حالا توی ماشین بود و ماشین هم به هرکت در بود. تلاش فراوانی کرد که به خواب نرود وضعیت آدمی را داشت که با یک دست از آخرین پلی نردبان هوشیاری آویزان است به زحمت توانست از میان ابر زخیمی که ذهنش را پوشانده بود پشت سر راننده را ببیند ماشین داشت سرعت میگرفت به بیاد هفتیرش افتاد به آرامی به پهلو چرخید تا جیب کتش که اسلحه را آنجا گذاشته بود آزاد شود دستش میلرزید اما هر طور بود اسلحه را محکم گرفت. دهانه ی هفتی را پشت گردن راننده گذاشت. همینجوری گفتار. من مسلم. راننده با نگرانی نگاهی به آینه ی عقب انداخت و بعد از زیر خنده. فکر کردی با این اسباب بازی که میترزونی. برای کسی هدیه گرفتی؟ ترلکوفسکی دیوان وار ماشه را کشید. یک بار، دو بار. بعد اسلحه را عقب کشید. صدای خنده راننده در فضای بسته اتومبیل آنقدر بلند بود که به نظر غیر انسانی می گلوله های کوچک به بیزیانی نیش پشه به پشت گردن راننده اصابت کردند به هوا پرت شدند و بعد هم روی زمین افتادند راننده خس خس گفت خیلی خوب، واسه دیگه، آخرش منو از خنده می گوشیم <تصحیح> هفتی را به شیشه جلوی اتومبیل کوبید هفتی راس هم متلاشی شد و به قطعات ریز پلاستیک تبدیل شد. راننده به عقب برگشت و با لحن کنایه آمیزی گفت: گریه نکن، میتونی یکی دیگه برای خودت بخری." از سرعت اتومبیل کاسته شد و بعد هم در مقابل در ورودی ساختمان توقف کرد. همسایه از ماشین پیاده شد و در را پشت سرش به هم کوبید. دو همسایه دیگر به او ملحق شدند و بعد همگی بحث آرامی را شروع کردند. ترلکوفسکی که تسلیم سرنوشت شده بود همانجا روی صندلی عقب دراز کشید و منتظر تصمیم آنها ماند آیا قصد داشتن فوراً او را اعدام کنند؟ به گونه این مسئله بعید به نظر می رسید وقتی دید در عقب قفل نیست، تقریباً قبل از آن که بداند چه میکند دستگیر را کشید و خودش را به وسط خیابان انداخت. بیرون از اتومبیل، روی دست‌های امسای 4 افتاد. کنترل ترکوزکی به خاطر وضعیت نیمه هوشیارش چندان سخت نبود همسایه چهار با لحن تعنامیزی گفت شما رو میبرید به آپارتمانتون تا بدون مزاحمت استراحت کنید به خصوص که به استراحت زیادی احتیاج دارید حالا فقط به من تکیه بدید و نگران هیچ چیز نباشید خوشحال میشم کمک کنم ترکوزکی فریاد زد ولم کنید بذارید برم، کمک، کمک دست سنگینی که به سختی روی گونهش فرود آمد، تنها جوابی بود که دریافت کرد حالا موسیوزی و سرایدار هم به جمع کوچک همسایی ها پیوسته بودند و با چشمانی که شرارت از آنها میبارید، ترلکوزکی را نگاه میکردند بیان که کوچکترین تلاشی برای پنهان کردن خوشحالیشان از یافتن دوباره او بکنند ترلکوزکی با ضعف و سستی گفت اما من دیگه نمیخوام به اون آپارتمان برگردم. هرچی دارم مال شما؟ هرچه که بخواید. فقط بذارید برم. مردی که ترکووسکی را نگه داشته بود سرش را تکان داد و گفت. حرفشم نزنید شما بی سر و صدا به آپارتمان خودتون میرید بدون اینکه درد سر درست کنید وگرنه بهتون هشدار میدم یادتون هست که دکتر چی گفت؟ شما به استراحت نیاز دارید. برای شما این از هر چیزی واجب تره. کم کم حالتون بهتر میشه. خب دیگه وقتشه که بریم بالا. مثل یک پرستار حرفی دست ترکوفسکی رو پشت گردنش حلقه کرد و شروع کرد به بالا رفتن از پله ها. می بینید؟ از همین حالا حالتون بهتر شده. بالاخره دارید سر عقل می آیید. خوبه. همینطور ادامه بدید. دوباره، دوباره، اله یک قدم برای ماما، یک قدم برای بابا، خوبه، خوبه. قدم به قدم تلکوسکی را با زور از آستانه ای در بعد از گذشتن از راه روی ورودی وارد حیات شدند و بعد هم از پله ها بالا رفتند. مردی که پشت سر تلکوسکی بود، همچنان به مسخره کردن او ادامه می‌داد. چرا نمیخواستید همراه من بیایید شاید دیگه آپارتمانتون دوست ندارید شاید هم جای بهتری پیدا کردید منو بگو که فکر میکردم این روزا پیدا کردن آپارتمان سخت شده شاید هم شما دستگاه چاپ اسکناس دارید البته این موضوع هیچ ربطی به من نداره با یک فشار نهایی ترکوفسکی را رو روی زمین و اتاق جلوی انداختند در محکم بسته شد و کلید دوبار داخل قفل چرخید بیهی چک و شبهی امشب شب معود